بسم الله الرحمن الرحیم درس باب ازالت نجاستی باب از بین بردن نجاست کل نجاست شق تحرز منها کدم البراغیثی و ماء القروحی وفیه ان دون کثیرها می هر نجاستی که سخت هست پرهیز از اون مانند خون کک یک حشره خیلی ریزیه به اندازه شکشه رو بدن راه میره ماننده خون کک من براغیس و همچنین آب زخم از کمش گذشت شده یعنی اون کمش مشکلی نداره نزیادش دور کثیرها نزیادش و مالم یشوق قد تحرز منها کالبولی والخمری لم یعفن قلیلها ولا كثيرها و اما اون چیزهایی که پرهیز از اونها سخت نیست مانند شاش شراب از کم و از زیادش گذشت نشده یعنی چه کمش روی بدن بیفته چه زیادش باید شسته بشه و یلزم تطهیروها بالما حتی یزول لونها و رائحتها و لازم است این نوع دوم پاک کردنش با آب تا رنگ و بویش از بین برود. البته در مورد خمر که آیا حرام بودنش که متفق بین تمام فقار ولی در مورد پاک بودن و نجیس بودنش حرفایی وجود داره خور فا این لم یکن لها لونون ولا رائحتون لزیم غسلها مرتن ولو غسلت ثلاثن کان افضل. اگر رنگ نداشت بو نداشت نجاست شستنش یک مرتب لازمیست. اگر سبار شسته بشه، افضل تر و بهتر. كلها نجسه لا تطر إلا بالغسل. إلا بول السبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش المي عليه. شاشها، شاشها، ادرارها همشون نجسند. پاک نمیشن، مگر با شستن. جز شاش پسر بچهایی که میگه غذا نخورده است این هم البته اختلافه بعضی میگن تا زمانی که شیر خاره بچه هست ولی که غذا بخوره همون آب پاشیدن کافیه دیگه شستن نیاز نیست امام شافعی رحمت الله علیه میفرماید که بچهی که خوراک نمیخوره فا اینهو یدحرو یدحرو لی رشت المه پاک بیشه با چکاندن آب برون پاشیدن شا... آب بر پس مال بچه بچه که خب بعضی از فقها میگن هنوز غذا خورده مثل امام شافعی با پاشیدن آب پاک میشه دیگه نیازی به شستنش نیست بس... البته پسر بچه و اذا ولغ كلب او خنزیرون او ما تولد من احدهما في اناء فقل ماؤه ان قلتين نجس ولزم ولزما غسله بعد اراقتی سبع مرات احداهنه به تراب و زمانی که نوشید سگ یا خنزیر یا آنچه که از این دوتا متولد میشه در زرفی و آبش کمتر از دو قل بود که قبلا گفتیم حدود 160 خورده لیتر لازم هست شستنش بعد از ریختن اون آب هفت مرتبه که یک مرتبه با خاک شسته بشه البته الان دیگه جاش صابون و این چیزا بعضی قبول دارن بعضی میاد که خب خاکو کاری ما این مسائل نداریم بریم جلوتر هدف پاکستان خب ولی در رابطه با سگ اومده هفت مرتبه اما لفظ خنزیر در و واذا انقلب الخمر فصار خللا بنفسه حل وطهر ولا يطهر ان خلل زمانی که خمر شراب تبدیل به سرکه شد خودش حلال هست و پاک هست و پاک نیست زمانی که خلیل عمدی توسط انسان تبدیل به سرکه شد خب این هم اختلافیست گروه از فقه ها میگن چه انسان بیاد اونو تبدیل به سرکه بکنه چه خودش بشه حلال میشه گروی اصفهان میگه اگر خودش تبدیل شد، اون موقع پاکه در غیری سردن که ایمان شافعی می نظریه رو داره میگه اگر خودش تبدیل به شد، اون مقد حلال و پاکه. و اگر دو برگ جلد المیتی او یا قراضیا أو مقام مقامه من جفت و عفس طهرا اذا نشافت فضوله و طاب ریحه و زمانی که دباغی شد پوست مردار با وسیله شب شب یک سنگ معروفیه سفیده مثل نمک قدیما با این پوستا رو دباغی میکردند او قرضی قرضی هم برگ درخت سمر تقریبا او مقام مقامه ها. یا آنچه که جای اینا رو میگیره منجفتن و عفز از جفت و عفس جفت هم گیاهه یا بعضی میگن مخلوطی از چند گیاهه و عفس عفس یه درختی شبیه بلوط بهش موضوع میگن اینو هم در از قدیم و لیام مخصوصا ایرانی با این پوسا رو تبدیل به چرم میکردن در باغشون میکردن پس زمانی که باقی شد پوست مرداد باشی سه شب یا قراغی یا اونچه که جایشو میگیری از جفت یا افس پاک میشه اذا نشفت فضوله ولی زمانی که خشک بشه اون فضول فضول ببینید زمانی که پوست تازه هست هنوز باقی نشده یک آبه های توش هست چرک های توش هست اکسری التحاباتی اونا رو میگن فضول اون آبودن و رتوبتش رو که اگر اونا باقی میمونند پوست رو فاسد میکنن. اونا رو میگن فزول. اونا رو میگن چی؟ مال پس زمانی که اون فضول پوست خشک شد و تاب ریحه و بوش خوب شد این که از بین زمانی که شما دوباره اونو تو آب بیندازی دیگه اون خراب نمیشه مثل الان مشکو هر چقدر آب داخل دیگه اون حالت قبل در باقی رو نمیگره. ولی اگر این دباغی نشه خوشک بشه دوباره تو آبش بیندازی دوباره هون حالت قبلشو میگیره و جاز استعماله فی الرقم الضائبی و الیابسی و الصلاة علیه و فیهی و جائز میشه استعمال کردن این پوست دباغی شده در مایجات و چیزای خشک. و نماز ور اون خوندن و داخلش خوندن حالا چه روش بیای نماز مخونی به انوان سجاده یا به لباس اونو بپوشی نماز درش جائز میشه پس طریقه پاک کردن پوست و توضیح داد زمانی که با اون مواد قدیم که اینجا نام برد امروز از طریق شیمیایی پوستا رو دباقی میکن ولا یطهرو به دباغتی اغمون ولا شعرون ولا جلد و کلبن ولا خنزیر میگه پاک نمیشه با دباغی کردن استخوان، مو پوست سگ و خمزییر البته احناف پوست سگ استثنا کرده خب بقیه فقها ها که پوست سگ و خمزی رو هر دوتا رو قبول ندارن إنه اختلاف سبينه وفقهه خوب، رمجو لوتار وأي شيء أخذ من حيوان لا يؤكل لحمه فهو نجس وإن كان مأكولا فهو طاهر مجهار تشيزي كغرفت بشه از حیوانی که گوشتش خورده نمیشه حیوان حرام گوشت اون چیز نجسه. و اگر معکول بود حلال گوشت بود فهو طاهرون پس اون چیز پاک هست ولا لا شرب و مائن الا من ضرورتن و جائز نیست نوشیدن آب نجس، مگر ضرورت فمن اشطر غیر باغن ولا عاد فلا اسمه عليه. ويجوز ان تسقاه البهائم والزروع وجائز اسك خرانده بشه ببهائم بچارباين و ولا يمس المصحف إلا طاهر وجائز نيست مس مصحف مدر براي شخص پاك ولا يمتنع من قراءة القرآن إلا جنوب أو حائز و... طاهر نمتوني مسحفو تبقى مذهب دست بزنه اما میتونه اونو بخونه کسی که وضو نداره ولا يمتنعوا من قراءه قرآن الا او حائض و دست نمیکشه از قرائت قرآن مگر جنوب یا حائض این دو گروه نمیتونن قران رو بخونند مسح سر جاش نمیتونن حتی بخونند بله پس شد از باب ازالت نجاست